یک پسری از امام کازم علیه السلام در نزدیکی های بغداد امامزاده‌ای داره اونجا مورد احترام شیعان عرب حتی غیر شیعان هست و میان عرض عدب میکنند شرح حال این امامزاده رو من خدمت رو نعرض کنم. یکی از پسران امام کازم علیه السلام برادر امام رضا چرا این گونه محرومیت رو چه جاذبه‌ای ای اون بره قضیه داشته؟ بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام خب امام کاظم تو زندان حارم بود امام رضا هم یه جوری تحت کنترل تابوت که تبعید شد به خراسان و شهید شد دستور داده بودند که 사ادات از بنی هاشم رو زیر نظر بگیرید چون اینا ممکنه برای ما پسر درست کنن این پسر به مناسبتی در مدینه تحت فشار حکومت زمان بود نمیتونه زندگی کنه فرار شد فرار کنه یه بوشه یه بیابانی اومد اطراف برداد به یه دهی رسید دید یک خانمی اومده از چشمه آب برداره ببره چشمه یا قناتی چتی هرچی هست آب که نوشید گفت سلام بر حسین میدونید شیعه دو سه شعار کاملا بارز داره یکی نوعا اگر شیعه باشه پهلوش درد بگیره لعن الله ظالمی که يا فاطمه یادش نمیاد معمولا شیعه پهلو درد داشته باشه یه به زبانش میاد شیعه آب بنوشه میگه سلام بر بسه. این یک واقعیت است. وقتی دید که این خانم آب نوشید گفت سلام مراسم فهمید چی است؟ ترری کرد می کجا میره؟ اوننش رو شناسایی کرد بعد اومد در زن. به صاحب خونه گفت که اجازه میدید مهمون شما بشن. در بین عرب مخصوصا عجیب به مهمون نوازی تعصب دارند. اگر قاتل پدر کسی بیاد بگه من فناعدده شدم به عنوان مهمان عنوان مهمان غیرت عربی اجازه نمیده اذیتش کنه راه میده. لذا اینکه اکرم ضعف و اوکان کافر ها معروف ضعف و مهمان رو گرامی بدارید ولو کافر باشد یک بحث معروفی تو عراه. خب اومد آقا میشه منو بفرمایید مهمون حبیب خداست سه روز ما روز سوم گفت که مهمون گرچه از حبیب شیرین مثل ننفس. اما اگر بیاد و نره میکشه دیگه اون شاهدم میگه اسلام هم از اون طرف گفته میهمون نوازی بکنید از اون طرف به میهمونا گفت شما ملاحظه بکنید یه مقداری اگر دیدید از روز میگذره یه مقداری مثلا شرایط ساپوره رو در نظر بگیرید اومد من رو صدا زد آقا جون 3 روز به من محبت کردی انایت کردید خیلی ممنونم من غریبم سرپناه و جایی هم ندارم میخوامم کارگری کنم شما فهمید که من خانواده اگه منو به کارگری منزل خودتون قبول دارید من اینجا باشم برای شما کار کنم جایی هم ندارم اونا دیدن تو متدینی و سالمی گفتن باشه ما کار کشاورزی داریم تو این ده کمک می‌خوایم اینو به عنوان که کارگرشون باشه نگعدوشه کار میکند اتاقی اوقاتیش داده بودن صداقت و پاکی و تقوای این جوان اونقدی خانواده رو گرفت پیشنهاد کردن اگه حاضری با دختر ما کنی داماد ما بشو اشناده ازدواج رو داد و قبول کرد داماد خانواده شد یه دختری هم پیدا کرد 4-5 سالم گذشت حال این پسر بد شد مشرف به موت بود حالت احتضار بود پدر و مادر همسرش خود همسر دخترش دور بستر نشستن گفتن که ببینید تو در حال مرگی داری وصیت به ما می‌کنی آخه اگر از دنیا رفتی دخترت خاص بشناس فامیلات کیا هستن از کدوم خانواده بودی نمیخوا نشانی به ما بدی ما بدونیم کی هستی گفت بدانید من قاسم پسر موسی جعفر هستم حالا اینا شیعه بودم اینا زدن تو سر خودشون دستشو به روز پاشو به چرا زودتر به ما نگفتی ما شیعه بودیم آخه تو به عنوان یک کارگر تو خونه ما باشی گفت نه شما به من محبت کردید پیش جدم از شما شفاعت میکنم ولی یک خواهش از شما دارم بعد از مرگ من دختر من رو ببرید مدینه مادرم خبر از من نداره چند ساله نشانه اون نور خاندان اقرق و نفوت که در ما هست اینه که شما سر محله بنی هاشم که رسید این دختر رو رها کنید او در خونه ما رو پیدا خواهد کرد اونجا به مادرم بگید که من در اینجا از دنیا رفتم اینم دخترم خب این شیعه زن شوهر منقلب شدن این جوون رو دفت کردن با ایام حج این دختر رو برداشت رفت مکه عمل حج انجام داد اومد مدینه سر کوچه بنی هاشم که رسید این دختر خودش یه مسیر روحی میگیره و پدر میگه پدر من که به این طرف دارم این یعنی پدر بزرگش اومدن اومدن در یه خانه‌ای رسیدند در خانه میخوب شد ایستاد گفت پدر من به این خونه علاقه خاصی پیدا کردم پدر طلب من پدر بزرگ میگه گوش دادم دیدم صدای نوحه سرایی یک زن از خانه میاد بیرون حراب دیدید که نوه سراییشون هم معروفه خوب که گوشت دادم دیدم یک خانمی در رابطه با پسرش قاسم نام نوه سرایی میکنه من در زدم در تا باز شد چشم اون خانم به این دختر افتاد بی اختیار شروع کرد گرگه کردن و گفت نمیدونم چرا این بوی قاسم من رو میده و شباهت شباهت قاسم من من قضایه رو براش گفتم که این جوریه و این نبی شماست آقا چرا یک جوان مگر چه کرده بودن اینها در این جامعه؟ آقا میگفتن ما مطیع خدا، این مطیع شیطان نمیشیم. اما اگر بنابود بود مطیع شیطان بشه معموریت‌های ظاهری دنیوی رو که نمبایس بپذیره. چرا؟ میگه ما جازبه ای در عبودیت الله دیدیم. بگذار جوانی بمیریم بگذار توی خونه کارگری کنیم. بگذار دختران ما یتیم باقی بمانند. بگذار اون بونه مادران ما نرو سرای اما ما از راه حق جدا نشیم. اما از اون طرف و یا ایوه الناز اعبدو ربکم و لذی خلقکم و من قبلكم لعلكم تقوم در اثر عبودیت الله به مقام تقوی میرسند در اثر مقام تقوا به کجا؟